اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاف و المجید به نام خداوند بخشنده بخشایشگر قاف سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است بل عجبو جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. آنها تعجب کردند که پیام بری انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیبی ایست متنا ترابا ذلك رجع آیا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می گردیم؟ این بازگشتی بعید است قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا كتاب ولی ما میدانیم آنچرا زمین از بدن آنها میکاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است. بالحق لما جاءهم فهم فی امر بریج. آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند از این رو پیوسط در کار پراکنده خود متحیرند فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف وما لها من فُرُوج آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کردیم و چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج و زمین را گسترش دادیم و در آن کوههای عظیم و اوستوارف کندیم و از هر نو گیاه بهجت انگیز در آن رویان دین تبین و ذکرا لكل عبد منيب تا وسیله بینایی و یاداوری برای هر بنده توبه‌کاری باشد ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فأنبتنا بي و, و از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم و به وسیله آن باقها و دانه های ها را که درو کنند رویاندیم و نخل باسقات لها طلع نضید. و نخل های بلند قامت که میوه های متراکم دارند رزقا للعباد واحيينا ببلده ميتا كذلك الخروج همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم آری زنده شدن مردگان نیز همین گونه است قوم نوح و اصحاب الرس و پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس قومی که در یمام زندگی می و پیامبری به نام هنزله داشتند و قوم سمود پیامبرانشان را تکسید کردند و عاد و فرعون و اخوان نوط و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوت و اصحاب الایکت و قوم تبع كل کذب الرسل فحق و عيد. و اصحاب ایکه قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب در باره آنان تحقق یافت بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جدید. آیا ما از آفرینش نخستین آجز ماندیم که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم ولی آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارند وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الْوَرِيدِ ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را میدانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک اذ یتلقی المتلقیان عن المنوعنشملبه خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ ملازم انسانند اعمال او را دریافت میدارند ما لفظ من قول لا لدیه رقیب عید انسان هیچ سخنی را بر زبان نمیآورد مگر این که همان دم فرشتهای مراقب و آماده برای انجام ماموریت و ضبط آن است. وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت من متحید. و سرانجام سکرات و بیخودی در آستانه مرگ حقیقت را پیش چشم او می و به انسان گفته می شود: این همان چیزی است که تو از آن می گریختی. و در سور دمیده می شود. آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است. وجاءت كل و, و معها سائق خو و كل و نفسم هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد به او خطاب میشود تو از این صحنه و دادگاه بزرگ غافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز کشمت کاملا تیز بین است و قال قرينه ما لدي فرشته ی هم نشین او میگوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است في جهنم كل كفار عنيد. خداوند فرمان میدهد. هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید. من آن کسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است. حتی دیگران را به تردید می‌افکند. الذي جعل مع الله فالقیاه فالقیاه في العذاب الشدید همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده آری او را در عذاب شدید بگفت کنید قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن ولكن که نفی ضلال بعيد. و هم نشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به تقیان و نداشتم لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد خداوند میگوید نزد من جدال و مخاصمه نکنید من پیشتر به شما هشدار داده ام و اتمام حجت کرده ام ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرده یوم نقول لجهنم محلیم تلأتی و تقول حلبیم یوم نقول لجهنم و تقول حلبیم به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای؟ و او میگوید آیا افزون برین هم هست؟ و ازلفت الجننت للمتقین غیر بعید در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می و فاصله ای از آنان ندارد هادا ما توعدون لکل اواب حفیظ این چیزی چیزیست که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب من خشیر رحمان بالغیب و جاء بقلب منیب آنکس که از خداوند رحمان در نهان بترسن و با قلبی پر انا در محضر او خافر شود اتخلوه بستهب ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید امروز روز جاودانگی است لهم ما يشاؤون لهم ما يشد. وال دوزیرده هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمت های بیشتری است هم اشد قونیم هم شدونین که بسیار اقوامی را که پیش از آنها خلاق کردیم اقوامی که از آنان قوی تر بودند و شهرها را گشودند آیا راه فراری از عذاب الهی وجود دارد؟ در ذلك ذكرا لمن كان له قلب أو السمع وهو شهيد. در این تذکریست برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا در حالی که حاضر باشد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام فی و ما آسمان هاب و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز شش دوران آفریدیم. و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. با این حال چگونه زنده کردن مردگان؟ برای ما مشکل است تسبیر علی ما و سبح قبل در برابر آنچه آنها میگویند شکی با و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور و من اللیل فسبح و و در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها و استمیع یوم یناد المنادی من مکان قریب و گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا دهد يوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج روزی که همگان سیحه رستاخیز را به حق می شنبند. آن روز روز خروج از قبر هاست نحن نحیی و نمیت و ما ایم که زنده می کنیم و می, می رانیم و بازگشت تنها به سوی ماست روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبرها خارج میگردند و این جمع کردن برای ما آسان است. نحن أعلم بما يقولون وما أن عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم و تو معمور به اجبار آنها به ایمان نیستی. پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز. وظیفه تو همین است.